جلسه این رب در آلمی و الله على محمد گفتم است از پروف گفتم چرا چون جمع و جمع قلعه تا ده و حدوثو میشه بردون می دفته چند تاست؟ چش درست شد؟ و اگر ما گروز بدیم گروف جنه کسره بگیم مگر اینکه اون موقع بیانی پروژیر کنیم بگیم این نه مخفف میشه هم نه میشه لاکه این نه میشه مخفف می با مخففاتشون ممکنه که ایتا میشه ولی اصل اینه که الاحراف بگیمش چون احراف میگه گروف حل مشبه حتی به این شبیه به فعلا و بچه شبه ها شده این کتاب عوامل خوندیم هم شباهت معنوی دارن به فیل هم شباهت لفظی دارن یه معنی شبهدو و حببهدو و استدرکدو اینجور ها و از طرف عمل فعل رو هم انجام میدن بر مرتدا و خبر داخل میشن عملش و محافرش اومد میبر فتحه بسه فیل مازی آه سی حرفی و چهار حرفی و پنج حرفی هم مثل فر و هم که دو جا بحثشون کرده بروف مشبهتون و ای و این بروف مشبهتون به فرق نه هست به معنای که نه هست به معنای تو. البته به که خبرش جاند باشه ولی اگر مستقل باشه به معنای تشکی که این بار لعیتر تو لیکن تو که استفراک رو هم مناشو گفتیم لرده عمل این گوزو و عملها و عمله عمل کنن عمل عکس عمل سلام و عملها عکس و عمل کنن این اینو اکثر عمل کننده کانن رفع اسم میده و نصب به خبر اینها عکس نصب به اسم میدن و رفع به نه شبیه به دینا فعل اول معرفه برمی داره بعد منصور اینها چون شبیه هند برای اینکه فرق باشه بین اصل و فرع اینها چی اول نصب میدن بعد که اینکه باشه بین اصلی که فعل است و فرقی که اینا یه یعنی شبیه به اصلا نصب و رفع دادن از خصوصیات فعله حروف که نمارد این کاره کنند اگر این حروف میتونن نصب بدن و رفت بدن به خاطر اینکه شبیه به فعلن خب اینها شبیه به فعلن قادرن نصب بدن و رفت بدن حالا باید یه فرقی باشه بین مشبه و ده بین فرع و عصق در فر که اهنه و اخواتش اول نصف است بعد رفت در فرق و اخواتش اول رفت است بعد فر فرق باشه و عملها اکس و عمل باید. این یک مکره. نشته میگه بلا یتقدم و اهد و معمولی ها علیها لا یتقدم لا یتقدم و. مقدم نمی شود اهد و معمولی ها یکی از دو معمولش یکی از دو معمول این حروف علیها و فرمی این حروف برخلاف فعل میتونست مفعولش براش مقدم چه نمیتونست یا که نه ابو امرن زرد تو اما اینها اهد معمولینش بر خودشون بخواهی مقدم بشه مطلقا جایز نیست مطلقا یعنی ظرف و جار و مجرور باشه یا هر چیزی میگریم باشه استثناغذیر قذیر اصلا استثناغذیر که اسم و خبر ان بر خود مقدم <تصفيق> یعنی بگید که حروف مشبعه بفل نسبت به معمولات خودش صدارت دارند این میشه حروف بفر نسبت به معمولات خودش صدادارند چیزی از ما بعد حروف مشبعه تن بر اون مقدم بخاطر این به خاطر اینکه شدید به زیر ضعیفه در سهر قویه معمولش بیافت به جوره میتونه بره نسبش کنه اما در اینها اگر معمولینش بخواد برش مقدم بشه قادر به عمل کردن نیست ولا یه تقدم اهل معمولی ها علیه ها مطلقا اون بین علیه ها و مطلقای برگود برشت برگود لازم نیست مهانتی نیست ولا خبرها علا اسمها خبر حروف مشبهتون به فیل هم بر اسمش مقدم تاکت او مقدم هم ما در حروف مشبهتون به فیل خبرش بر اسمش مقدم هر کنی ما اما یه استثناء دارم الا ازاکانه ظرفن اجار رنگ و مجرور دارم الا یعنی مگر انبامی که ازاک کانه کانه یعنی خبر کانه خبر رو زمین میکنه دارم مگر زمانی که اون خبر ظرف باشه یا جارو مجبور مجرور باشه که اینجا ظرف و جار و مجرور دارای چی هم؟ سعت هستنها اتفاع و وسعت وجود داره در ظرف و جال و مجلور. به, به مجال اقتصاد به ظرف و جال و مجدول به ادایه به خاطر مجال اقتصاد و وسعت دار بودن اینها که ظرف و جال و مجدول خوش نشیند خیلی جهان میتونن اینها برن که چیزهایی بوده قادر الا اذا قلنا زائد فن او جار لمجزور نحو ان نفي ذلك لا عبرتا ان جار متعلق و عامل مقدر يعني یعنی موجود خبر مقدم عبرتا اسم لا معلومه مشيان ضمن موضع لغه با زیرهی و هیچی اینا اینا فی یا معل اصره یسره معل دیگه اضافه شده به چی؟ اصره اینا معل اصره یسره معل اصره زرفه است مزافه هست متعلق به آمد مقدم قبر مقدم یسره اسمی ی نمی‌دانم. دیگر. و تلخکو، تلخکو یعنی چی؟ به آخرش می‌چسبد. و تلحق هم ما می‌چسبد به آخر این حروف ما، ما فعال تنها هستیم. با اون ها مفروض می‌چسبد این حروف را ما، ما می‌چسبد به آخر این حروف. یعنی این نمیشه چی؟ این نما این نمیشه؟ این نما نه لیکن نما تا هلحب و ما این ماهی بشتیم یعنی چی ماهی؟ کافه یعنی ماهی که مانعه مانعه یعنی چی؟ یعنی جلو عمل اینها رو میگیره چون جلو عملشونو میگیره دیگه اقتضای عمل ندارن پس این دیگه بگیر لوزومی نداره که بر سر جمله اسمیه در بیاین. می‌تونن بر سرشون بذارید. هم دارم. و تعالی ها بو ها فتکو بو ها ان العمل. قص نمیگم در این ها را از نه و ان ما زیدون قال انما یوها ها الی. اینما یوها الیه انما اله حکم الهون واقع انما هر تو در این کلمه آید یعنی چی؟ کرده می شود به سوی من متعلق به این انه تا آخر تعبیل به مستر میره نای فایل یو هاست انما ما همانا اله خدای شما الهان واحد خداییست یکتان یعنی همانا وحه میشه به من چی؟ اینکه خدای شما یه دونه هست توحید به من وحه میشه چیز بیره توحید وحهی ان نما، ان نما، نیو بین هردو یه کلام. یکیش بر سر جمعه یه کیش پارسال جمله فلی، یه دارم دیگه یه کیش پارسال جمله اصلا خدا اینجا بعضی از آیاتش شاهد مثاله نه می‌ست. ان نمازی دم واقع. شد در, ای در اینها در همه مای کافه جروه عمل را بگیر اما در لیته در لایته جایز است که با اون که ما آمده است باست عمل در لیته تنها جایز است با اون که ما آمده است عمل حالا اگر در لایته ما داشت و عمل کرد به این ما میگیم ما ایچی زائده اینی کافه اگه قلیم لایته ما تا ایران اگر ما اومد شد لایته ما و عمل کرد میشه ما زائبه. اگر عمل نکرد میشه ما ماید این مال لعیت. و همین لایته اگر ما هم بر سرش در باز به جمله اسمیه در میانم اختصاصش رو به جمله اسمیه از دست نمیده. دو دوتا نکته گفتم خواهد اختصاصش رو به جمله اسمیه از دست نمیده ما نمیتونیم بگیم لایت ما آگه بو موزرگیم همچین چیزی بگیم نده این است در خصوص لعیته که اینجا اونوان عل مصدر حالا کجا ان نمیخونیم کجا ان نمیخونیم یادتون باشه گفتیم ان جمله رو به جملگی خودش باقی می ولی ولی ان جمله رو تعویض به مصدر حالا ایشون هم همین میگه عل مصدر و ان حل محل ان خطه حمزه مستر ان حل اگر ولون کرد محل ان در محل جایگاه ان مستر بگونه سیم جای امنه براد شد فتحت همزه همزهش میشه چی؟ مفتر همزهش میشه؟ مفتر چرا چون تعبیر به مستر بره دیگه؟ یعنی هر کجایی که ما مفرد احتیاج داریم و مستر احتیاج داریم باید چی بخونیم؟ انه یعنی مثلا اگه فایل شد چی میخونیم؟ نه. مفعول به شد چی میخونیم انه چرا چون مفعول به باید مبهد ولی اگه مفعول قل شد چی میخونیم ان نه چرا چون مفعول قل باید جمله باشه اگر جواب قسم شد چی میخونیم ان نه چرا چون جواب قسم باید جمله باشه اگر مجرور به حرف جر شد ان نه چرا؟ چون حرف جر در سر جمله در نمیاد در سر مستر در میاد جسمون همین تو تا آقا هر کجای محبت لازم بود النا و هر کجا جمعه لازم بود النا خواهده می حالا مواردش رو تو کتاب ادایه تو کتاب عوامن چند مورد رو بیش از ده مورد رو و المستر رو انحل محل انا فتاحت هم شده و الا و الا یعنی چی؟ یعنی و انام تا هل محل ها و ان لم تحل محلها اگر حلول نکرد مصدر به جای نما مثلا اول کلام بود جواب قسم بود مفعول ماده قول بود و و و, و در این نوع مبارد که جمله احتیاج داریم دیگه قادر نیستیم ان ده باید ان بده جمله بشه حالا یه جاهایی هست که انسان میتونه بگه مفرد بیاره میتونه جمله بیاره میگه خب اگر هم میشد مفرد اونجا بیاره هم جمله میشه جائزو بچه ممکن ممکنه از یه دید نگاه کنیم بگیم مفرد بیاریم ممکن از یه دید دیگه نگاه کنیم بگیم جمله بیاریم شد میگه و انجازل امران و اگر جایز شد ال امران هر دو امر یعنی چی یعنی هم حروره مستر هم عدم حرور نمیشه که هم حرور هم عدم حرور میگه با دو تا نزد تناقض نیست ها مشخص نه تناقض نیست میگیم فلانی هم استاد هم شاگرد. خب این اگر در آن واحد باشه هم استاد هم شاگرد امکان نداره ولی اگر یک جا استاد باشه یک جا شاگرد تناقضی پیش میاد. با یک دید میشه مستر آقا با یک دیده دیگر نمیشه مثلا اگر فرض کنیم مقول غور فرضش کردیم آوردن ان لازم اگر خبر فرضش کردیم و مقول این نه فرضش نکردیم مفرد میتونیم بیاریم بیاریم از جهت مقول بودن باید این نه باید. از جهت مفعول بودن یا خبر بودن باید امنه بچن با دو ته نظر یعنی اگر امنه ترکیب کردیم میگیم مقول قوله نظر ما اگر امنه ترکیب کردیم میگیم خبر مقه باست مستند بروس شد الا کسر و این جازل امران جازل امران اگر هر دو هم جایز, جایز بود کنون دو هم حلول و عدم حلول جایز از هر دو هم کنون دو فتح دادن و هر دو جا حالا نسال می زنه. یه دونه برای جایی که واجب است فتحه بدیم یه دونه برای جایی که واجب است کسره بدیم یه دونه برای جایی که چیه؟ جایز رو وجهینه بقیه شما شما برایش پیاسه یک اولا یک فهم انا انزلنا هون اولا یک فهم اه همزه استفقان واقا به آتفه اه بقید همزه صدارت تاممه داره صدارتش از حل بیشتره صدارت تاممه داره حتی بر واقا آتفه هم مقدم میشه یعنی الان اگر بود و حل بگفتی و یک فهم بود و حل یک فهم اما الان که همزه هستش دیگه نمیگی وعلم یک دیگه میگوی چی؟ همزه چون صدارت دارد حتی بر فا هم بر وا هم افلم یسی رو فرعت افلم یم زروع افت اول اصم و ازا وقعت آمنتون این که سنبه هم اولاً یک فهم لم یک فه فه مجزون شده به هست حرف فهم. یک فهم. کفا اگر یک مفهولی باشه مثل اینجا به معنای اقناست اقنا بینیاز کرد اولا یک فهم هم لم یک فهم. خب چی لازم در الان لم یکفه؟ فایل. آیا بی نیاز نکرد ایشان را چه چیزی؟ انا انزلنا این که ما نازل کردیم برآن بود این فائل لم یکفه و فائل باید چی باشه؟ مفتد میشه جمله فائل واقعه نزا انده خود یه دونه که گفتم یادتونه هست جایزه اننا بگیم جایزه است اننا بگیم برسته اینجا اننا اننا اسم انست و محلم منصور انزلناهو فعل و فائل و این جمله خبر اننا و محلم مفغول تعبیر به مستر میره این جمله اننا انزلناه و میشه فائل نمی اکده تعویل به منصور بره میشه چی؟ انزالونا یا یهو امزالونا ای یهو تحمیله به آه اینجا واجبه که ما حنبه خواهیم و راهی غیر از این و قاله حاله برای کسیش و قاله امنی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبید کی گفت اینو؟ قرآن نزرت ایسا در گهواره گفتی گفت اگر میخواید از همین بچه بپرسی صبر قول من مادر رو از این بچه بپرسی گفتن کیفانو کلمه من کانت این محسسان آخو ما چجوری با بچه تو گهواره صحبت میمیم ها گفت بریم اگر خدا قرار باشن معجزه کند برای قبره کردن کسی از دهمت اون کارو و بچه حضرت ایسا سلامون دا. و علی و اگهش گفتی من اولا بنده خدا بعدا از عبودیت به رسالت میرسم و آتا من کتاب, کتاب خواهد دار رسالت خواهد داد. و جعلنی نبی دارد بعد هم من رو نبی قرار قاعد دارد الان قالت زمین قاعد یعنی قالت ایسا این اینی عبدالله, این عبدالله مضافه مضافه. این این اینی عبدالله اینی عبدالله یا عبدالله مضاف و مضاف و اینی خبر این جمله اینی عبدالله بعد اینی خونده شه اینی غلط است. چرا به دلیل اینکه که فعلی است که مفعولش رو مفعول قول محکی قول و مقول قول میگویند و باید جمعه تمام شد حالا بیریم سر مثال جا از و وجهه مثال جا از و جه. عبدو قولی عبدو قولی الی احمد الله الان اول مبتدا اضافه شده بود قول قوم هم اضافه شده به سوی بیا اون بستر یعنی اولین ابتدای گفتن من آغاز سخن من آغاز سخن من آغاز سخن من چیه اینی احمدالله انی احمد الله انی احمد الله یا اسم الناس احمد الله فعل و فاعل مفعول این جمله معلم خبر خبره احمد. الان این امی الله از نظر ترکیبی چیه برای اول خبر دیگه اول مبتداز اضافه شده به قول قولم اضافه شده میگم مثل که بگم اول قولی ات توبید اول این گفته من برای خبر دیگه اگر شما به خبریت این جمله نظر کنید اگر شما به چی به خبریت این جمله نظر کنید، باید چی بخواید؟ اندر باید اندر بخوانی زیرا مبتدای شما اسم ذات هم نیست اسم ذات هم بهسمنا اگر مبتدا اسم معنا شد واجب است که خبرش هم مشخص حالا اگر شما به مبتدا بودن اول نگاه نکنید به معنای اول نگاه کنید داره گفتیم اول اول, اول، تفضیل اضافه میشه به چی؟ به مابد کنید و میشه از جنس آ؟ مثل اکثر شوربی. که اون اکثر هم از جنس شور. حالا اول اضافه شده به قول اول هم میشه از جنس چی؟ گفته اگر شما به این مطلب توجه کنید که ذات مبتدا واقعیت مبتدا ماده قوله و این احمد الله مغول قوله در معنا و واقع این چیه؟ گفته شده است مغول قوله اگر به این دیت نگان بکنی باید چی بخونی؟ این نه چون قول واجب قول پس ما اگر به عنوان عنوان یعنی چی؟ یعنی پست پست سازمانی اگر به عنوان و پست اول نگاه کنیم که محتضاست و اسم ذاتم نیست خبرش با باید چی بخونیم؟ نه بخونیم اگر به واقعیت اول نگاه کنیم که قول است و گفته هست و ما بعدش میشه مغول به واقعیتش نگاه کنیم با چی بخونیم؟ این نه بخونیم چرا چون در واقع این ای نه مقوله چو چطوریشون؟ بعدی با دو دید، با دو مشخص خب اول قولی امی احمد الله اول قولی انی احمد الله حالا یک ای رو اینجا اون‌دام میکنه میگه اگر شما اومدید و یک چیزی رو الان شنیدید ان نزایدن قاهمون ان نزایدن قاهمون اگر شما اگر شما عطف کنید یک اسمی رو به جای زید آه. یک اسمی رو عط کنید به جای زید اگر قبل از اومدن خبر باشه قبل از اومدن خبر باشه واجبه که نزده. بگید ان نزدهیدن و امرن چی؟, چی؟ قائمانه اِن نزیده و امرن قائمانه امرن و زید را که اسم اِن امر را بر لفظ او عط کنیم امر رو واجبه که بر لفظ زید چکار کنیم و غیر این جایز غیرش جایز اما اگر بعد از خبر باشد بعد از استکمال خبر یعنی بعد از اینکه خبر آمد بعد از اینکه خبر آمد اگر باشد بیدیم این نزیدن قائمون وعم رن وعم روم جایز است حذف بدیم و اعطف بر محل کنیم حذف بر محل اسم ان محل تج بریج یعنی محل تج درست چرا محل بعید چون این اسم این نه قبل از اینکه که چه چه محلی داشت از ارام مبتدا بوده، ما به اعتبار اون مبتداییت و مرفوع محل بعیدش حتم بودم چی ام و جایز است و بهتر است حتی شایز از تو بهتر که به نصب بخوانیم و بگیم چی؟ امران بعد و بعد نفس میشون و بعد بگیم نفس ببینید اگر قبل از, قبل از خبر عطف کنیم خبر رو باید تصمیر بیاریم خبر رو باید چیه؟ تصمیر بیاریم گفتیم ان زیدن و امران قائمانه ولی اگر بعد از بعد از اومدن خبر اعط بکنیم که لزومی نداره خبر ما رو اون اولیه یو ان و امرن و امره چی گفتی خلاصتون کلام اعط بر اسم نه قبل از استکمال خبر واجبون نصب و بعد از استکمال خبر بهتر است نصب و جایز است نصبش بنابر عطف لفظ و رفعش بنابر عطف علن کوشید یعنی چیزی که عطف کرده ان شاء الله علا اسماء هؤلاء حروف معطوف بر اسماء این حروف منصوب منصوب است یعنی عطف لفظ میشه حالا قبل از استکمال خبر یا بعدش منصوب بودنش در هر دو طرف صد درصد و یختست و, و اما این و این نو لکن این ستا یجوز و جایز است این معطوف رو کنید رفع جایز از خوب نیست تا جایز از رفع به شرط موزی به شرط گذشتن خبر ما گفتیم این به شرط اینکه خبرشونو گرفت پس در سه تاشون که قیل از این و این نست چه قبل چه بعد واجب است نه در هر شیشتاشون قبل از استکمال خبر واجب است نه بعد از استکمال خبر در سه تاشون جایز از وقت هم بدیم اطفالا محل بودیم اطفالا چون این آیه قرآن چجوریه امنالله و ملائکته ها یا ملائکته ها بخیره ان الله و و ملائکه, و ملائکه, ملائکه, توبوه؟ ملائکه, توبوه؟ اگه ملائکه باشه میشه چی عطف به جای اسم ان الله و ملائکه تبو عطف میشه به جای اسم نا يسلمون میشه چی شد. اما اگه ملائکه تو روی باشه چی قبل از اینکه خبر بیاد چی شده عطفه به رفت شده و این قانونی که ما خوندیم غلط میشه آه. نه رفت است و رفتشم درست چرا میگیم اصلش این بوده ایناللاها ان ای الله چی؟ یوسلی یوسلی خبر این نبوده حزم شده و ملائکته او یصنون اون یوسلون خبر ملائکته بود ان الله یصلی خدا صلوات میفرستد و ملائکش هم چیکار میکنن صلوات می و ملائکته بود چی یوسلی الان و اینجا ملائکت او هون مبتداز یو سلبونه خبر شهد جای امنالله هم جمله و این سهیدتره چرا؟ چون سلوات خدا ببینید اگر من گفتم ان نزیدن و امرن یک توبان اِن نزیدن و امرن چی چی؟ یک همون همانا و هم چیه؟ می نمیسن. وقزلشن زيت مثل نوشتن امر مرد و قلم به دست کاغذ می نمسن. درسته بگم یک توبان اما در مورد این آیه صحیح نیست چون سلواتی که خدا میفرسته با سلوات ملائکه چیه فرق داره ما تو بگیم ان الله و ملائکته و و خدا و ملائکاش درود میفرستن نه درود فرستادن یسلمی سلوات از طرف خدا رحمت رحمته سلوات از طرف ملائکه چیه درخواست رحمته تو بغ داره ان الله یعنی خدا رحمتش رو بر, ملائ... بر نبی خودش میفرسته و ملائکته یصلون و ملائکه هم دست دعا بلند کردن و دارن تضرعن بر برای ریزه رحمت بر او چه می کنه؟ تمام می کنه. ها. لازمه آ یه حدیث و انده و لاگه نه به جواز رد به شرط مزیه سوم از سالسون ما بلا المشتبهات اله بنیسه. ما هم بحث شبارشون باز ما گفتیم. طعملان عملها این دو تا عمل می کنن عمله دا ایشال شرط دارن دقت کنید عمل اینها شرطه عمل مولا مشفعته و شرطه هر کدام دو تا شرط مشترک دارن و یک شرط بگید اختصاصی یعنی دو تا شرط دارن که در هر دو چیه شرطه و یه هر کدومشون یه شرط چیه اختصاصی یک به شرط بقای نفر شرط اول که در هر دو هست اینه که نفرش باقی بماند و شکسته نشدن نفیش به بسیل چی شکسته بیشده اله استثنانیه و نسیده به شرط بقای نفر یعنی بگیم ما هازا بشرن تو قرآن داریم ما هازا بشرن ببینید که بشران چی شده؟ تنسوب شده ما مشبهتون به لیزه حازا اسمش بشران ما حازا باش نفیش باید اما اگه نفیش شکسته شد دیگه عمل نمی کنه. مثل ما انتم الا بشراً مثل دونان ما انتم الا بشراً مثل دونان حالا نفیش شکسته کنید مامای مشبرتون به دیسه عمل نمی کنید ملغا انتون مبتدا اللا اللای استثنائیه استثنائی مفرقه بشران خبر مثلونا مضاف مضاف من صفت بشر یعنی نیست شما مگر بشری تمامن هر کدوم جا شد دیگه عمل نمید. ما گفتیم ما قائمون زیدون دیگه عمل نمیدون ما قائمون زیدون این هم ما چون بدانید نفیش که از پیم بره یه شباحت به لیسه نداری اسم و خبرش هم جا به زورش نمیده سعمال کنید چون این داره خودش به خاطر شباحت به لیسه عمل کنید اگر یه موقع جا به جا بشه دیگه اینقدر قدرت نداری پس این دوتا چه چرطی چی؟ اشتراسی در هر دو اصلا اما شرطا اختصاصی و یشترت و فی ما عدم و زیادت این معام اختصاصی ما اینه که بعدش این زایده نیایند، بعدش این زایده بگید نه این زایده باره تحکید نه بگید ما زیدون قائمن ما زیدون قائمن. اما اگه گفتیم ما این زیدون بعد بگیم چی؟ قائمن اگر بعدش این زایده دیگه عمل این معلومه چون ارزایده بعد از لعیسه نمیاد حالا اگه بعد از ما بیاد شباهت ما به لعیسه از بین این یه چیزی بسرش در بیادی بسر اون در اینه شباهتی به هم دیگه باید شد این شعر داره بنی قدانته یعنی یا بنی قدانته بنی قدامته ما این انتوم زهبون ما این انتوم زهبون الان یه این نبود گفت ما انتوم چی زهبن آه گفت ما انتوم زهبن ولی میگه ما این انتوم زهبن و یشتر تو فی ما حد اما زیادت این مرمان در لا هم شرط اختصاصیش اینه که اسمش چی باشه؟ نه و فی لا تنکی رو معموله در لا واجب است شرط شده که معموله اینش باشه. باشد؟ نکره باشه. معموله اینش نکره باشد و غیر نکره نشه. حالا لا نباه کنید لا کلمه لا گاهی اوقات یه تا به اسمی چسبه میشه چی؟ لا تا تو قرآن هم داریم لا تهینا مناسب لا مناسب مناسی باسا یعنی فرام لا تهینا مناسی میگه گاه اوقات لا یه دونه تابش بچسبه میشه لاته اون موقع دیگه فقط در مورد زمان بکار میده. پس اگه تاب لا چسبید شد لاتر فقط در مورد چی بکار میره؟ زمان یعنی اسم و خبرش باید زمان باشه یه ما اسم خبرش که زمان باشه اسمش هم 99 درصد واجب است اسمش اسم بشه 99 درصد واجب است اسمش چی بشه اسم بشه مثل یا آیه لا تهین مناسم لا تهینا مناسم اساس دیگه لا تهین دین مناسم یعنی نیست زمان زمان فرار زمان زمان فرار نیست لاتا هینون هینم اناسیم بوده هینونش چی شده هست شده هینم خبر خبر پس 99 درصد واجب است که چی اسمش هست شده و یک درصد دیده شده که خبرش وجوبا هست شده یک درست دیده شده که خبرش وجوبن بگید حضرت شد. مثل همین آیه خوندن لا تهی نو مناسن لا تهی نو مناسن او واقع بگیم هی نو مناسن چیه؟ اسم لا خبرش لهم بوده چی شده؟ حضرت یعنی نیست زمان فرار برای ایشان لا تهین نو مناسن لهم لهم محصوله. و جایز نیست که اسم و خبرش با هم ذکر بشه جایز نیست که اسم خبرش با هم چی؟ با هم بخواد اسم خبر ذکر بشه جایز گرفتی کل مختصاد لاگر گفت. اما را گوش کنیم و این لحقتها اتا لحقتهای چیز برای خودش بچسبت اگر به لا بچسبت ها؟ قرض شد اخْتَصَّت بِالْأَحْيَانِ بِالْأَسْمَان دیگه اون واژه پیدا میکنه به چی؟ به زمان ها معنیش میشه زمان اسم خبرش واسه زمان و کسر از اسم ها و, و کثیر از حذف اسمش وجوباً نوابلاته اینا مناصن شما از این کسر از اسم ها میفهمید که چی؟ قلیلن هست چی؟ حذف خبرش اسمش باقی بمونه و جایز نیز هر دو با هم زک بشه دارد شد نسلم نام